ای آن که خلاسه چهار ارکانی، بشن و سخن از عالم روحانی، دیوی و ددی و ملک و انسانی با توست هران چمین مایی آنی. خواهی که پسندیده یا آنام شوی، مقبول قبول خاصه و آم شوی، اندر پی مؤمن و جهود و ترسا، بدگود مباش تا نکونام شوی. ای چه، چه کردم تو را راست بگوی، پیوسته ای مرا در تگ و پوی، نانم ندهی تا نبری کوی بکوی، آبم ندهی تا نبری آب زرود. چندین غم بیهوده مخورشاد بزی بزی، من در ره بیداد تو باداد بزی، چون آخر کار این جهان نیستی است، انگار که نیستی و آزاد بزی.